جلال 47 قواعد فقه سوال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین مصلح الله على سید نو نبی القاسم محمد و علاؤه لایت تاهرین المعصومین الله في ارزین روحی و له الفدا با ترکل بر خدای متعال و تحصول به پیامبر گرامی و احل بیت ادخار اللهم السلام بحثمون رو آغاز میکنیم انشاءالله که دوستان و عزیزان عباداتشون مورد حضرت حق قرار بگیرد در این ماه مبارک ما رو هم از دعای حیل خودشون نفرمند بحثی که ما داشتیم ناظر به بحث قواعد فرعی مربوط به قواعد اهم و مهم است. تو قواعد مختلفی رو ما مطرح کردیم. یکی از قواعد دیگه مهم بحث آخرین قاعده ای که داشتیم تقدیم مصلحت الغایه علی مصلحت وسیله بود قاعده قبل هم تقدیم تقدیم المصلحه المتعدیه علی المصلحه القاصره و, و هم طور قواعد دیگه ای که پیشتر ما داشتیم یکی از موارد برمیگرده به تقدیم مصلحت کفایی بر مصلحت اینی خب این رو هم که ما داریم طبیعتا مفهوم مسلحت در واقع کفایی مسلحت کفایی برآمده از واجب کفاییه این مفهوم در واقع به عنوان است که در احکام واجبات کفایی مد نظر هستند و طبیعتا موارد دیگه هم همینطور مسلحت عینی هم برامده این هم از این مفهوم با عنوان مسلحتی است که در, در واجبات عینی مدد نظر است خب این مد نظر بودن کجا است که در مقام جل در مقام جل و سبود این در واجبات کفایی مد نظر قرار گرفته خب اینجا ما با چه مقوله سر کار داریم ابتدا ساکن تقدیم یکی بر دیگری است اینجا تضاحم در این مورد تضاحم در این مورد مربوط به تضاحم دو فعل واجبه که یکی واجب کفایی و دیگری واجب عین است. خب شما مثال های زیادی می توانید برای پیدا کنید. مثال سیاسیش تطبیقات این مثال چیه شما سراخ دارید که در عالم جنگ و جهاد می بینید حکم واجبی دارید. در میانه در واقع در تضاحم بین دفاع یا وجود بگیم بین وجوب دفاع ایدی با وجوب تحصیل دانش به صورت است اینه مثال خب مثال دوم اصلا همونجا شما میگید که در عالم جنگ وجوب دفاع از سنخ واجبات وجود وجوب است دفاع از سرزمین یا جهان اسلام این از سنخ واجبات کفایی است اما اطاعت از والدین واجب نیست. یا مثلا بگیم مورد دیگه چیه رسیدگی به پدر و مادر حالا اگه بچه دیگه نداشته باشه یا مثلا بگیم پرداخت نفقه پرداخت نفقه در صورت خلاصه عدم تعدد خلاصه اولاد در صورت وحدت اولاد تک فرزندی و عدم کفایت و ناتوانی پدر مادر اینا فرزشه و ناتوانی آنان برای اداره زندگی واجب عینی نیست خب تضاهم مربوط به عالم دفاع و واجبات شخصی در واقع اینجا برخی موارد تزاهم نسبت در بحث دفاع و واجبات شخصی یا این واجب اینیه خب واجب اینی برای مقدم میشه چرا؟ که راه گرزی نداره در واقع این مورد تحلیلش به چی برمیگرده تحلیل نکته تقدیم یکی بر دیگری چیه تقدیم واجب کفایی واجب یا مثلت برشید مثلت اینی ما داریم میگیم مثلت کفایی مقدم بشه یا مثلت اینی مقدم بشه حالا بعضی این تعبیر رو ممکنه داشته باشن که واجب کفایی بر واجب بر مثلت عینی در واقع این رو باید برعکس در نظر بگیریم کدام مقدمه واجب عینی بر شماست اما واجب کفایی رو دیگران هم میتوانن انجام بدن خب این در این صورت نکته تحلیل چیه؟ چرا واجب یا مثلت عینی بر اون مقدم میشه؟ در واقع خواستگاه تقدیم مثلت و وجوب عینی بر کفایی به جبر در واقع جایگزین پذیری یکیش برمیگرده واجب کفایی جایگزین گذین پذیره درسته اما لذا به جای بردامی میکره شما که انجام ندید در صورت عدم امتصال یک فرد میتوان خلاصه امتصال فرد دیگر رو سراخ گرفت و اون رو جایگزین این مورد دانست جایگزین مستاق اول دانست به این معنا که خلاصه امتصال فرد نخست منتفی میشه اما یکی دیگه انجام بوده بله ثوابش رو اوناها نمیبره ولی امتصال به صورت انحصاری نبود به دیگه وجوب امتصال واجب کفایی انحصاری نبود هر چند در بدوه امر هرچند وجوب واجب کفایی از لحظه نخست بر همه هست بر عهده، همگان میتوانه تعلق بگیره و تعلق گرفته اما اینجا چی میشه؟ انحصاری نبود وجوبه واجب کفای انحصار نبود و قابلیت انتصال اون توسط افراد دیگر هم وجود دارد و بنابراین شما اونجا تخلفی نمی کنید اما در واقع بگیم که این امتصال صدق ای داره مصداق دیگهی داره در نتیجه شما با امتصال اون واجب توسط فرد دیگر به آن از عهده خلاصه فرد نخست ساقط می شود امتداعا گردن اون بود خب اما از گردن اون ساقت می شود. در نتیجه در واقع این مسئله به این صورته که واجب اینی امکانه خلاصه بازنگری درش نیست واجب کفایی در صورت امتصال توسط دیگر افراد از اهده فرد اول ساقت میشه و دیگه تضاهم نخواهد داشت در صورت امتصال توسط دیگر افراد با واجب اینی تضاهم نخواهد داشت به تعبیر دیگه در صورت عدم امتصال واجب کفایی بر در واقع توسط دیگران بود که فرض تضاهم خلاصه محقق خواهد بود اما با امتصال اون ترسل افرادی که دیگه این مشکل حل میشه پس نکته تزاهم چی بود؟ جایگزینی کذینی واجب و مسلحت کفایی بود و به تعبیر دیگه و در نتیجه در واقع امکان رفع تزاهم در صورت در این صورت در صورت نیست. افراد دیگه خلاصه میان چه کار میکنن میان واسطه میشن و این تظاهم رو برمیدارن خب پس تقدیم مصلحت عینی بر مصلحت کفایی ریشش اینه خب وقتی که وقتی که مصلحت عینی به لحاظ وجوب یک واجب بر عهده یک فرد قرار دارد امکان گریزه از اون نیست و این وجوب و این مصلحت و مصلحته خوشتیبان اون مصلحتو بگیم فایده اون مسلحت مختازی اون جایگزین پذیر نیستش درنت اما در مقابل مصلحته کفایی جبران پذیره بگیم که جایگزین پذیره. در نتیجه تقدم مصلحت و وجوب عینی در مصلحت یا واجب کفایی می تواند در واقع از منظر عدم تضاحم لحاظ شد پس نکته اساسی این بود که این فرض رعایت بشه که ما تخلف نداشته باشید در صورتی که واجب کفایی توسط دیگران امتصال نشود تضاهمه میانه واجب اینی با واجب کفایی یا بگیم واجب یا مصلحت کفایی یا مصلحت کفایی با واجب یا مصلحت کفایی به مسابه تضاحم دو تا دو حکم دو واجب یا مصلحت عینی خواهد بود اگر دیگران امتثال نکنند این مقدمه خب در اینجا نکته مهمی این نکته مهم در این مورد چی بود که این فرض مطلق نیست، فرض نخص، فرض نخص دائمی نیست، فرض در واقع جایگزین پذیری یک فرض معلقه، فرض ثابت و تغییرپذیر نیست. چرا که خلاصه چرا که محدود به یک مور یک فرضه به یک در واقع فرضه به تعبیر دیگه اینکه در صورتی که خلاصه اگر اون فرد بیه جایی گذیم بکنه یه مسئله قابل حل اما اگر کسی نیا امتصال بکنه این سجای خودش پس ما به این مسئله تقدیم مسئله عینی بر مسئله کفایی رو در واقع حاصل چی میدانیم؟ از مفهومی اون مربوط به عالم جعل تصویر تزاهم مربوط به دو مسئلهت مزبور به تزاهم دو نوع واجب از میان تکالیف احکا در واقع احکام شرعی باز میگرده و به تعبیر دیگه ما مسئله فقط چیز رو نداری تضاهم دو مصلحت بدونه در معمولا حالا اگر محدودش هم نکنیم معمولا در فضای تضاهم احکام تکلیفی تصویر میشه در نتیجه تضاهم دو مسلحت مزبور ناظر به تضاهم دو حکم وجوبیست خب و در خلاصه یکی از اونها یکی از این دو مورد دوچار مشکله یه لحظه باش. یه لحظه You are now on خب تضاهم در این مو... مورد مربوط به تضا دفل این مسئله تصویر مفهومشناسی بحث بود که عرض کردیم در واقع مروری من دارم می‌کنم به این نکاتی که از اول جلسه عرض کردم یکی بحث مفهومشناسی یکی بحث تطبیقات رو کردیم نکته بعد بحث تحلیل اینه که در واقع داریم مستندسازی می‌کنیم. که و تحلیل میکنه ببینید وجه تقدیم چیه تطبیق رو دو مثال عرض کردم های زیادی میشه مطرح بکنیم چون یکی واجب انبیسی کی واجب کفایی واجبات پس و خلاصه بحث نکته تقدیم جایگزین پذیری واجب کفایی بود و اما وجوب امتصال در واجب کفایی انحصاری نیست یا جایگزین پذیره اما در مقابل وجوب عینی خلاصه مشکل پیدا میکنه ما از یک طرف وجوب عینی داریم وجوب عینی یک ویژگی داره و وجوب عینی نمی تواند خلاصه کنار گذاشته بشه وجوب عینی قابلیت خلاصه عدم امتثال نداره باید توسط مکلف حتما امتثال بشه اما وجوب کفایی می تواند توسط دیگران هم انجام بگیره به خاطر امتثال توسط دیگران ساقط شده و فرض تضاحم از بین برود متأ مطلق نیست پس اینجا گفتیم میتونه از بین بره در وجود کفایی پس انتفاع در واقع انتفای انتفای وجوب کفایی یا بگیم تنجزش وجوبش سر جای خودش هست بگیم وجوب تنجز در وجوب کفایی میتوانه رافع وضعیت تضاهمی باشه چرا که این خلاصه وجوب امتصال انحصاری نیست و دیگران توانند این رو انجام بدن وقتی انجام دادن تضاهم از بین میره خب در نتیجه ما میشه بگیم که این تضاهم در این موارد به تبیر دیگه تضاهم در میان واجب یا مصلحت کفایی با واجب یا مصلحت می میتواند صرفا به صورت بدوی تصویر شود در برخی موارد در چه موقعی؟ در صورتی که امتثال توسط دیگران انجام بشه اگر امتثال توسط افراد دیگر انجام شود که در که در مبتلای به تضاهم مزبور نیستند یا حتی باشند ولی به هر حال انجام بدن اگر انتصال واجب کفایی توسط دیگران انجام بشه که مبتلا به تضاهم نیستند افراد غیر مبتلا به تزاهم میان چه کار میکنه موضوع رو منتفی میکنن که واجب کفای تحصیل غیر افراد مبتلا به تزاهم انجام بگیره این در واقع خلاصه باعث انتفای تضاهم مزبور خواهد شد چرا؟ چون که این ریشه رو زد واجب کفایی از اول بود اینجا این تضاهم دیگه منتفی شد در این صورت وجوب مجبور یا بگیم یا تنجوز اون از عهده مکلف نخست مکلف در واقع مقتلب تضاهم برداشته خواهد شد و تضاهم مزبور صرفا در در حالت اولیه و به صورت بدوی بود لحاظ میشه خب در خب حالا این یه فرض شد اما فرض دومش چی بود که دیگران انجامش ندند در موردی که جبران پذیر جای گذین پذیر نباشه به فرضیه که خلاصه دیگران امتصال بکنن محدود به فرض امتصال توسط دیگرانه اون فرض امتصال حکم در واقع واجبی چی بود واجبی بود که ما باید سرکار داشتیم به عنوان واجب کفایی خب واجب کفایی رو اگر انجام دادن خب مسئله منتفی میشه پس من در واقع دارم چه کار میکنم؟ با این نکته تحلیلی بحث رو برمی به اقتضای ذاتی این دوتا شما خود بگید که پس این یه نوشگرد روش شناسانه است این بحث رو من دارم به کار میبرم خلاصه اینجا ما فرض امتصال واجب کفایی توسط دیگران رو که مطرح کردیم این اومدین یعنی به جای اینکه ما یه استدلال مثلا آیه و روایت و اینا از اقتضای این دو تا داشتیم استفاده میکردیم اگر انتصال بشی خود به خود موضوع تل میشه پس ما اینجا در واقع در این بیان ما آمدیم از یک نوع ماهیت شناسی استفاده کردیم در واقع برای اثبات وجه اثبات تقدیم واجب یا مصلحت عینی بر واجب یا مصلحت کفایی می توان از طریق موضوع شناسی بگیم موضوع شناسی این دو واجب خلاصه بهره گرفت و با تحلیل ثبوتی نز... ناظر به نسبت این دو حکم، این دو حکم یا مصلحت، به خلاصه اثبات ضرورت تقدیم یکی بر دیگری پرداخت. پس ما الان اینجا چیکار کردیم به جای اینکه آیه روایت بیاریم از این روش به کار داشتیم ویژگی این دوتا رو تحلیل کردیم من روی می‌خوام تاکید بکنم خیلی جاها ما از این روش می‌تونیم استفاده کنیم خودمون موارد رو تحلیل کنیم پس ما یه مفهوم شناسی ابتدایی کردیم که خب روشن بود فقط از باب تذکر واجب و, و اینها یا تطبیقاتی که دو سه تا مثال گفتیم ولی مثال خیلی زیاد داشته باشیم این مسئله کار خب اینجا اگر ما تو مسئله مفهوم شناسی اگر در نظر بگیریم این مسئله یه مقداری مشابهت با موارد دیگه داره اون نقطه تحلیلی که گفتیم این مورد رو ما در واجوهات دیگه هم میبینیم در تمام مواردی که امکان بگیم جایگزینی حالا نه از این سخر جایگزینی یک تکلیف با تکلیف دیگر در میان باشه همین نکته تحلیلی میتونه منشاء خاصگاه و منشاء چی باشه اثبات تقدیم اون مورد بر دیگری در فرض تضاحم باشه مثل چی مثل اون بحث تقدیم واجب مزيق بر موسع خب این مورد خلاصه در تضاحم بین واجب مزيق و موسع هم میتوان خلاصه دیده بشه شما دیگه همین منطق رو میتوانید بکار کار در واقع یه جوری ممکنه این تحلیل رو استدلال عقلی هم حساب کنید خب موارد دیگه چیه بین مزایا و موانع و موارد این طوری یا به تعبیر دیگه فوریت و تاریخی این در خلاصه در موارد تضاد بین فوریت و تراخی ما یه طرف رو خلاصه قابل واسعت وسعت می‌بینین مساقط پذیر. جایگزین جزیره البته یه بحثیام اینجا داریم حالا بحث جدایه ولی چون اینجا قاعده کلی بود نکته خلاصه‌ اساسی این بود تو این نکته اساسی ما یه مورد دیگه هم میشه مطرح کنیم دشواریش بیشتره نکته موردی چیه بگیم نکته دو این یک بود نکته دوم این که مثلا در مواردی که ما سراغ داریم یه طرف غذا میشه موارد فاعته اه تحلیل اه تقدیم موارد جبران پذیر ماننده جبران پذیر از طریق غذای برخی واجبات نیازمند در واقع اثبات شرعی در تقدیم موارد خلاصه بدون قضاست و موارد جبران ناپذیر از طریق قضا رو باید اثبات بکنیم بیایم توضیح بدیم از این طریق ما هر موردی رو نمیتوان خلاصه بیاریم مواد تقدیم موارد جبران ناپذیر از طریق غذا ببخشید برکس گفتم تقدیم موارد جبران نپذیر جبران ناپذیر بر موارد جبران پذیر یعنی ما اونی که خلاص نب ما تقدیم می کدام کدامه اونی که جبران ناپذیره بر چه مواردی بر موارد جبران پذیر از طریق قضا از طریق قضای شرعی، خب، این نیازمند اثبات شرع است و به تعبیر دیگه صرف وضعت در یک طرف وسط در یک طرف نمی توانه وجه تقدیم برای خلاصه مورد جبران نپذیر باشه بر موارد جبران پذیر باشه چرا یه طرفش مصداقه شما اینجا چون چونکه مقالی است پس نکته اینه که زیرا اصل پذیرش امکان جبران از طریق غذای اونها امری شرعی در واقع نیازمند جعل شرعی است خب اون متفاوته یه واقع شما میگه آقا من مثلا نماز قابل جبران پذیرم از طریق غذا رو با موردی که جبران ناپذیر نیست و مقایسه کنم اون دیگه به تعبیر دیگه بعد اعموم ما اینجا خلاصه به صورت موردی اثبات بشه در نتیجه باید با تمس خب این مورد تو به تعبیر دیگه به تعبیر دیگه این موارد معمولا از خب امور تعبدی اند و نیازمند اثبات از طرق شرعی می باشند. در نتیجه باید با تمسک به عدله خاص تقدیم موارد بدون قضا ناپذیر بر موارد قضا پذیر رو خلاصه اثبات کرد من از خودم نمیسا زمایی یعنی ببینید بحث های مستاقی داره در لابلا موازی که خلاصه بحث های اینجوری هست به بحث ها نزدیک میشه و ما باید این رو در نظر بگیریم که چگونه میتوانه خلاصه بحث اینجا روشن بشه و شفاف بشه اگر شما مصادیق مختلفی رو بخواید پیدا کنیم بخشی از این می میتوانه در سحنه امور سیاسی هم قابل طرح باشه من مثال حالا سالات رو زدم شما ببخشید مثال دفاع و شخصی رو عرض کردم شما می توانید بید بگید که آقا من در همون فضای مثلا مناسبات سیاسی جهانی یک واجبات کفایی دارم یه واجبات عینی دارم واجبات کفایی در مناسبات جهانی خب متنون دفاع از ارزش های اسلامی دفاع از ارزش های اسلامی یا بگیم تطبیق اونها تطبیق اونها مصادیق متنوی داره خب ای، که این موارد ای، این موارد وجوب کفایی دارند خب شما مثلا سلمان، کشتن سلمان رشدی به طور نمونه می تواند محل توجه قرار بگیره وجوب پیاده سازی حکم اعدام برای کسی منند سلمان رشدی این وجوب عینی داره یا وجوب کفایی داره وجوب سازی حکم اعدام وجوب کفایی داره هرچند به بهانه وجوب کفایی نباید فرار کنیم وجوب کفایی مستلزم بهانه برای فرار از این واجب نیست اما اگر واجبی عینی در زمینه مثلا دفاع از ارزش‌های اسلامی یا کیان اسلامی بگیم از ارزش‌ها یا کیان اسلامی در سطح روابط بین‌الملل متوجه یک دیپلمات باشه میتوانه اون رو در واقع شاید بگیم باید برای او اگر واجب اینی باشه اگر واجب اینی که داریم باید اون رو بر موارد وجوب اینی مقدم کنه بدون اینکه بدون اینکه که چون این مواردی بحانه برای گریز از واجبات کفایی باشه خب البته یه جایی ممکنه تضامنه اهم و مهم های دیگه هم در میان بیا اون یه بحث دیگه است هر ممکنه شما بگید هر چند ممکن است اقدام مثلا یک دیپلمات یک جایی بره یه مجموعه افرادی باشن، سلمان رشدی هم اونجا باشه. اقدام یک دیپلمات که دیپلمات کشور اسلامی برای اعدام سلمان رشدی در صورت دسترسی به او میتواند خلاصه موانع دیگه هم داشته باشه. ممکن است اقدام این خلاصه به لحاظ امور دیگر به ویژه مفاسد به, به لحاظ پیامت های مختلف و مفاسد موردی ممکنه خلاصه مورد بررسی و خلاصه نفی ترجیح قرار بگیره بسیگه مورد داره خلاصه مسادیق تزاهم در, چون در اقدامات دیپلمات ها توان متفاوت باشه ولی اصل مسئله نباید خلاصه در اقدام دیپلمات ها یا مسافران به کشورهای غربی جای تعمل مصداقی داره و میارهای مختلف باید به صورت تو امان لحاظ شوند اما این نباید خلاصه اینها رو ما در نظر بگیریم و بحانه بکنیم اینجا خلاصه این موارد نباید بحانه باشه یه زمانی مثلا آمدن گفتن که آقا وزیفه مثلا وزارت خارجه نیست خب اما اقدام یک دیپلمات یا بگیم اصلا مجموعه دستگاه خلاصه اقدام دستگاه دیپلماسی کشور اسلامی یا دیپلمات ها ممکنه خلاصه دیپلمات های خلاص حاضر در کشورهای غربی میتوانم خلاصه زمینه های خواستری برای اعدام فردی ماننده محدود به یک فردم هم نکنیم فردی ماننده سلمار رشدی میتوانم خلاصه به صورت فل جمله به لحاظ پیامت های مختلف و مفاسده خلاصه اون پیامتاش مورد بررسی موردی قرار بگیره اما خلاصه اون نباید ایجاد بشه این رو نباید نادیدیم پس این هم یک مثال های خاصیه یعنی که مثلا شما در واقع شما بیاید بگید که من دیبلوماتی هستم در یک کشور در معرض دیدن سلمان رشدی هم هستم اینجا این دیگه ملاحظات خاص خودشه داره به لازه پیامت های مختلف خلاصه برای کشور اسلامی مورد برقصی قرار بگه نه اینکه که صرفاً مساله و مفاسد متوجه به یک شخص به طوان معیار ارزیابی قرار بگیره و منتهی به عدم امتصال نسبت به وجوب اعدام اون فرد بشه بنابراین بعد اینها رو لحاظ کرد پس ما واجبات عینی و کفایی مختلفی داریم که باید اینها رو ما در نظر بگیریم و اینها رو خلاصه با هم لحاظ کنیم مثلا شما در زمان جنگ آیا می توانستید بحث دفاع می توانستید بگید که آه شما چرا امروز جهاد نمیرید این در بحث جدیدی هم نیست در واقع این مثال ها این مثالی از اول همیشه در ادوار مختلف قرون مختلف است در فقه شیعه در فقه سنی مورد توجه بوده اطاعت از والدن یا رسیدگی خلاصه رسیدگی به احوال اونها خلاصه امر. مثلا از طریق پرداخت نفقه یا سایر موارد در صورت تکفرزدی و ناتوانیشون یه واجب اینیم این مثال این, این مثال خلاصه در همه ادوار فق در فقه شیعه و مورد توجه بوده. خو مثال اینجوری میشه پیدا کنیم و مسائل های دیگه خب یک صلوات و رحمت بفرماید برای دوستا دو سه تا این رستوران رب العالمین